اعوذ من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله من الله و و الله و, و, و ما برای یه مقدار آشنایی با طرح بحث اینها خود کلمات مرحوم شیف انصاری به مقداری که متناسب به بحثه. ما تمام بحثه ایشون یه مقداری اگر میشون بذاریش الان کل فرمان الکل ها از کلی مرحومی روانی اشکال کرده بیشان که حبایت سه ها هیچ احسنیت این راسته من حالا توضیحاتش رو اجمالا ارز کردم یکی از مشکلاتی که ما داریم کلن شیف شیف برای حتی من اون جواهید حالا با جواهید این مقاریم جو کم کرد شیخ میشه. چون شیخ مسادر بر اشگاهش ندوده حالا یعنی تیویز راهیزانه زنگی نه خریده کتاب من در یکی از این کتاب های شیخ کشاب شدارم تو زهنم میتنیم نکاحش سومشه بردم شد سومشه باشه. ها نگاه میکردم ایشون شیخ به یک مناسج تو اینگه از خطو بحل یعنی مسادر اولیه در افتیار ایشان نبود ایش رو به تتاهایی دیگه ولی ازاش که غالبا به نحو محکیه به نحو حکایت حالا در محکیش مثلا علب نهر شده ایشون نوشته که احسان نرکل ماتقه در منصده ها اصلا. اصلا دیرو دارم این آقایشون دارم آقایشون در سه مراجعه کنه. در سه ها داره اصلا این اول ایشون اولا در سه هایی چیش که <Sillah> الگناه من از سماه این چه؟ این که ایشون این که اصلا لمز بیمحتویه یعنی من همه روشنگ ندارم بعدم که مراسیه به خود کتاب شد ایشون نشته برای گناه داری کس من از مار یعنیم خلاه این گنی گناه داره یعنی مار که میگن از گناه و مندودن من از اگر غنا خوندیم محدودن این از شیلی نه در ما غنا سما در اینجا این از معقوله مسموعاته از معقوله شیل اینه عبارت به اینه اصلا رکسی به این مطلبی که شیفانیسای نرکرمودن نداره و عجب اینه چیشونو وله احسان و نرکل ما تخدمه من از سهان خود سهان که وضعه روشایی نداره اون وقت رکی این به اونجا که کلام توضیح دادن خب ایشون تقریبا به حساب این چاکی که من دارم در صفحه 291 متعرض کلمات لغوی ها شدن ما بحثا رو سابقا نهارد کردیم این اگر کتب اصحاب ما میخواد تصیح بشه پس این جواهر یا همین مخاصب بشه اصولا اده از خواه های ما حالا با کمازیادش یک دسمتی از بخش صحبت رو اختصاص دادن به کلمات لغویین مثلا یه بحثی از کلماتشون کلمات اهل لغویین این کار خوبیه اجمالا کار خوبیه اما هم به اصطلاح ابحام هایی های غلط در نقل دارن چون به نهر مکیه و یا به هایی عبارت ناقص نقل میکنن این دو تا و از همه مهمتر. اون تنظیم تاریخی و سیر تاریخی که بخواد لغت رو به شهرش بکنن متعرض نمیشن عرض کردیم سرش در حقیقت اینه که در ذهنیت اینها حجیت تعبودی قول و لغتی بوده هم در اون رساله حجیت و که الان رسال معروفه از کردیم شیخ کتاب رساله ننمشته چه چارت رساله دوزادان نمشته بعد ضمن مذنگی چشوندن کسا یکی فقيه المالخانه در اسم کتاب وجد المالنه است مقدمتاً بحث افتاره الان مثلا اول در این باره اضافه که اضافه تحریفی در باب مسائل درشود رساله شه دو تا دارا اشتغال شدن رساله اقتصاديش هم تابو كردي چهار تا رساله مرحوم شه دوزاغا نوشتن شهر بيننده در طول ديغى النسخه اصلي که شو ها درست و بيز علایه که ما کار در حجیت نظرنه بعد از اینکه شما قبول میکنه که زن حجت نیست پنج تا ما ماخرجه به دلیل از اون که زن حجت پنج تا رو ذکر میکنه توضیح که توضیح شدیم که در یکی هم حجیت قول لغوی شیخ در اونجا حجیت قول لغوی رو این حجیت یعنی ما در مقابل لغوی دست بسته باشیم تحبودی قبول بکنیم از خیلی خصوص چون این لغت بزرگی است لغت صابره داریه در ریشه‌های این لغت و در مصادر این لغت و در اشتقاقات این واژگان قویغه به اصطلاح تایفات علمی شده الان ما با مراجعاتی که این با کتبی که در عربو شرح العرب و طایع العرب خود این الفاظی که در عربی آمده چه مقدار متأثر به عبریه چه مقدار مثلا عرب مدینه متأثر به عبریه عرب مکه متأثر به ثمود کلا عرب متاثر به یک ابن زلعهجات یمنی و غیره این الان زیاد گفته شده خودت فکر بکن دیگه اگر اون تفکر قدیم کلا باید برداشته بشه کل اون تفکر ما دیگه حجیت معنا نداره اصلا حجت دیگران ما به لغوی به چشم یک انسان محدود با یک زیربنای محدود در یک مرحله تاریخی با یک کار معین این چشم نگاه میکنیم به بر به حجیه این نیست. من از که این مثال همش، باید من مثال گفتم، خود جیاد مثل اینی که شما یک کتابی دستشونه با یک هفتم گلگانی، وگرنه آب هم توی آب وجود داره. میگی چرا آب خاموش کن دستی شما بگیریم؟ آب خاموش کنم و یک گلگانی جلوی دست کتابی این اسمش حجیت جیاده. یعنی در یک فضای ثالیف شما حرکت میکن اما راه دیگه شنیدی که چرا روشن خود یا آب کنیم؟ گلگان چه کتاب چه چرا روشن خود برای خودش چ ما الان دیگه توی بحث لغوی دنبال خودجیت نمیگردیم الان تحقیات لغوی در خصوصا در لغت عرب هم به خاطر دامنه وسیع لغت عرب میگن مجموعه مستعمل لحظ عرب دو میلیارد دو نیمه مجموعه حفاظی که عرب الان مستعمل داره در این کتاب المخصفی تاریخ العرب برد الاسلام داره خب این در تدمین لغت کیفیت نزول قرآن کیفیت کتابت تد... قرآن در در مدینه فرهنگ اهل مدینه فرهنگ اهل مدینه تقریبا اینها یک چیز واضحه یعنی ما به خوبی می توانیم خلیله ابن احمد رو در اون به اصطلاح تنظیم تاریخی جای خودش بگذاریم نهایه ابن عتی جای خودش بگذاریم مجموعه بحره این جای هر کدوم جای خودشون و می تونیم به احوال اینها اصلا حکم بکنیم ببین کارشون صحیح بوده صحیح نبوده ضعیف بوده یک بحث کبروی این است این بحث را ما در اصول متعرض شدیم و مقاله می‌دونم از اینکه می‌خوام تکرار بکنم چون مطالب زیادیه اینکه اجازه در اصول و باشه بیایید ارزیابی جهات مختلفی در این جا وجود داره یعنی الان به طور کلی بحث بکنید ما به طور کلی های لغوی رو خیلی می‌تونیم قشنگ‌تر و روشنتر از مرحله تعبد خارج بکنیم به مرحله تعقل بیاریم این یعنی یعنی اساس این گوکسارهایی که شده و از کدی دیوغه از هم اختری متأثرانه تدوین لغت عرب در دنیای اسلام شده این یک مشکل درست کرده و خصوصا در قرن دوم شده اساس تدوین هم ما بین و کوفه شده قران ی نظری در مکه نازل شده یه نظرییش هم در مدینه نازل شده با این لغتی،, لغتی که تدویر شده فهم قرآن در رواید رسول الله مشکله خیلی مشکله این به دردون کار نگو کاره باید به شباهد دیگه مراجعه کرد دقیق می و مشکتر این ای که پیدا شده مخصوصا که این الفاظ مخصوصا بعد از انقسامات مذهبی انقسامات مذهبی در اسلام منشه خونریزی ها شده هسته جنگ ها و قتال ها واقع شده بعد از این جنگ ها و دکاله ها لغت تقسیل شده بعد از انقسامات فقهی لغت تقسیل شده من از کلم که رارم مرارم در معارف دینی ما در اسلام به طور کلی بعد از رسول الله تفسیر و فقه اوله یعنی حتی اگر اهل سنت یا مثلا مسلمان ها می همون وقت دنبال حدیث خیلی وضع معارف دینی ما در بین دنیای اسلام فرمون کرد متعارفانه اول دنبال فقه و تفسیر رفتن وقتی که به دنبال دنباله جابوسفان سال 150 یعنی قرن دوم تنظیم نهایی حدیث هم تقریبا سال 200 که این خلیه این حسن این ذریه این جزاص این شواهد داره این مقارنات داره این این فلاغه این حرفایی که بعد بردن، اینا بیدت... در آورده اینها سالهای 200 یکی که این لغت جز روم منقوله یعنی این لغوی میاد نقل میکنه اینجا عربی جوی داره استعمال میکنه بعضی جا اصلا خلاف قواهده بودن من اینجا الانه نبت آلی فرامون دیم که از منحله تعبوت خارج کنه وارد حالت منحله تعقلش بکنه یعنی ما بیام این مسئله منغول رو که از عقلی مید با عقل عقل یعنی با بخش که خی خوده نه اینجا عقلی یعنی فلسفیش بکن نه،, نه یعنی میتونیم با شواهد تاریخ خودش مثلا بدیم این لحظ تو کوفه مثلا در کوفه هست مثلا به اینکه ایرانی زیاد بودن خیلی از الفاظ فارسی هست منجایش... مثلا من در بخاری داره افق از کلمات اندالله الله الملوک قال سفیان صویبی سفیان که اهل کوفه است یعنی شو شو خب ایشوای میسته ملک الملوک رو به این فرماله شو در رو یعنی خطاب لاخور با خیر اومده یعنی شاه انساب شاهنرز شاهانشاه نشاهانشاه شاهانشاه خب اگر از کلمه فرند الله ملک الالعالاک و ملک ملو شعبیان صوری که این ما میتونیم بفهمیم یعنی کاملا برای ما سیر تاریخی واضحه مثلا این سیر تاریخی چون ما سیر تاریخی رو میدونیم که پیغمبر اکرم و مسلمان ها با ایران رابطه نداشتن با تیسفون یا مدائن سابق که پایگاه به احساس ساسانیه بود رابطه نه دست رابطه شون با شام بود و یفن پس ما با دنبال این دو, دو فرهنگ یکیم فرهنگ شام و فرهنگ یفن و تأثیر این دو فرهنگ در شیعن همینطور مثلا روایات ما در مدینه صادر شده به لحاظ لفظی و در کوفه پدوین شده این مشکل کاره پس این دو تا مدینه یعنی مدینه مدینه در اصطلاح فهرین فره که عمر میدونن و عبدالله عمر کوفه رو فتح عبدالله عمر مسعود و علیه نعبی طالب میدونن اینو ما وقتی فهمیدیم میفهمیم اگر تأثیر و تأثیری بوده باید این دو شهر رو در نظر بگیریم مدینه و کوفه دقیق میفهمم؟ حالا مثلا شافری با مثال از کارش مستان به اصطلاح خودشون جدید جدید شافی مال مصره خب شیعه چرا از به مصر داره اصلا یعنی چیزی که تشریح است موقع من با منظر شاطی چرا که متره متر ما <مصر> حالانه هیچ تعریفی در روایت ما نداره دقت میکنید؟ اون نقطه ای نداره که تعبیر بکنه یا بصره اصلاً بصره خود این مستقله بصره اما تأکیدی در روایت ما نداره دیگه از بحث شما خارج بشه یه نکته دیگه که شما به عنوان اشغال محترم سوال بفرستید در حقیقت من می‌خواستم توضیح بدم بعد لغوی های ما مختلف هم خوب دقت بکنیم ایدهشون هم چی که ایشون فرمودن خوب همین کتاب سیبه نگاه میکنید فعلی صمره عربیهون فعلی صمره عربی عادیهون ال کتاب اون شیبه این شما با میشه نشه اما همهشون اینطور نیستن ایدهشون معركه از دیگران حتی در شعرها الان در زبان عربی نقد میکنه از نایر ابن به نهایی که مراجعین با زبان شعر داره فقد لحظی هم در تو هم باید اشاره کرده. ولی حالا وارد کتب لغت بشیم. یک مسئله دیگه کتب لغت به این لحاظ تاریخی، به لحاظ فنی، به لحاظ که منابع کارشون چیه و چه ارزشی داره و هر لغتی چه کار کرده. اینا خب با جداگانه برانسی بشه. مراد من از تعقل نه که دنبال فلسفه برید. مراد من از تعقل میتونیم شواهد تاریخی اضافه کنید، نه اینکه چیزی دیگه دست در مقابل اینها قرار نگهیم و این دو تا مطلب مطلب خیلی مهمتر همین بود که ارام در سلالش اشاره کردیم دیروز توضیح مفصل از کردن اشاره چون مطلب تنموش کنیم و اون این که بعضی از الفاظ واقعا در عرف مختلفه در لغت لغت یه صحبت مردم این یه واقعیت داره نه اینکه اختلاف بین لغبی ها باشه ما وقتی شواهد تاریخی رو نگاه می‌کنیم مثلا در عده از متون تاریخی اومده که یک نظریه که صدایش رو بلند میکنه حالا ممکنه ملحی هم نباشه هم نباشه تار تصدورا هم, هم. هم که صداش رو بلند کن میگم قرنا مدر این کتاب القدیر گلدشیش که از چیزایی که مربوط به که کار یوبر این یوبرنی عمر صداش رو بلند هست میگه که خودش بلند کنه خب ما وقتی تصور چهره عمران در چهره شنید اصلا قناب اونه میخواهیم قناب <تصفيق> مولیهی مستحیل از اون <تصفيق> <تصفيق> حالا این یوغنیه اینکه این رفع این رفع صغتر که نویشه فرد نسبار این رفع مرد صغتر این ها واقعیت داره اختلاف لغوی نیست چرا من از که لغرف یک مشکل داره مثلا کلن عرف یک مشکل داره مدرمن لغت و پایگزار لغت در عرف شخص واحدی نیست لغت مثل یک حرکت جریان رودخانه است مثل یک نهر. همه افواد در اون تأثیر میکنن الان شد مثلا فرض کنیم اگر اکسایی ببینیم فیلمایی که مثلا سیاه هایی تو آفریقا یک نهر خاصی میرخسند و میخونند و چوب میزنند. شاید شما مثلا هیچ حالات یز این پیدا بکنیم خب این رو برشن خینا تو همه روات هرستانیش پیمندر استادو باعشه و اون حدشی خندون این خینا نیست خب این مایی رو نه مویدی است حالت در این تا ریجال بکنه این یک واقعیتی خوب دقنگ بکنی اینی که مرمونی شهر روی پلان گفته مد و صد گفته مد ترجیه پلان گفته مطره این در واقع خود عرف متعد بدن روشن خب میاند به هشن شد ما یک نوع تسامح هاگرفی داریم الان نه هر ک قبل ص میگه دننا کان ی غ این انام این قط اما کن نیست پسستش رو برم بیاید کدا هم توگاه ساس اون رو بل کنیم. یه اسمش قرارارش گزار ها بهق میکن این استعمال وارد شده این استعمال هست. اگر لغبی شنش ملاحظه استعمال باشه خ خب راست ما می بینیم این که میگم تبد نیست م رابیه. اونم این متن تاریخی رو می‌بینه می‌فهمه اینجا ایراد رفع اصول، ما هم می‌بینیم از رفع اصول اون ده تا پس من تعقل به مسواه المونی پیدا نکردم اون یک استعما دیده مرعنا این دو تا نکته نقطه. اون نکته نقطه فکری راnabla نمی‌جوش ممکن است مسواه المونی که شافعی مطلق رفع اصول حرام میدونه ایراد نمی‌شه اما اون آقای دیگه رفع اصول از ترجیح رو بنا می‌دونه حرام میدونه یعنی هم اشکال استعمار لغوی داریم هم اشکال اختلاف فقیه داریم و از طرف دیگه خود ما هم که به شواهد تاریخی مراجعه می کنیم الان نصوص تاریخی بیشه خیلی فراوانه. انصافت که اینها مراجعه می کنیم کاملا واضحه که ما از نصوص تاریخی معانی متعذف میفهمیم، فهمیم نه معنی واقعه و از طرف دیگه هم ارز کردم لغت یک قدیده اجتماعی خوب دقت بکنید اگر یک مثلا فرس با مثال سوار مثبال مونی فریومی بگه مثلا این معنا داره یک نفر بگه معناش اینه این کافی نیست برای لغت بودن لغت یک قدیده اجتماعی یعنی توش تفهیم و تفهم خوابیده تفهیم و تفهم به این معنا که من اگر اراده مایه خاص کردم بگم آب این تفهیم کردم و می‌دانند که شما هم از این آب همون معنایی که من تفسیر کردم تفهم می‌کنید و الا اگر من گفتم آب شما چیزی دیگه بهمیدین این لغت نیست اصلا اساس لغت به تفسیر و تفهم اجتماعیه من یک لفظی رو قصد تفسیر دارم لذا کسانی که قائل به مختلف تعهدن مثل مرحومه استاد آی خویی یا مرحوم آقای احمد اسکوانی چون تعهد به آی خویی تا قبلشان هستن الانم شاید به نظر من در جای قائل, قائل به مشکل قائل باشه من نمی‌بشم قائل به مکتب باز باشم در مکتب تعهد اساسش اینه من که قصد تبیین می‌کنه لذا بیان کردن وضع همینه غیر ای هم از این تبیین متفهم چیزی نیست الیگ بنرزم معنا ندید نه و در حواس در تبیین مفصل نمیخواد ذکر ببینید الان در انسان عربی خوب دقت بکنید این باید چی کار بشه وقتی بگیم لفظه جنابی این معناست یعنی الان یک انسان عربی هم هر اون معنایی در مصباح المونی آمده و تفهم بکنه تقدر میکنید اگر انسان عربی اون لفظه نفهمید این لفظه عربی نیست غایتش که استعماله اینو خوب دقت بکنید من همیشه عرض می کنم ما ممکن است یک لحظه و حتی تحلیل بکنیم تحلیل فارسی بکنیم. لكن بعد از تحلیل دو مرحله بقول هارون میگن حرکت ظاهره و راجعه یه حرکت راجعه بود داشته باشی اون تحلیل رو بدیم به دست عرب ارغمون بفهمه. در این ما بیان تحلیل بکنیم و عرب اون نفهمی ارزش نداره. اینه که مثل و این نکته رو خوب در نکات من مرادم کتاب جب... ب... ب... مکاسب نیست. این یک سنت جاریه بوده در فرم. می آمادن اول قول لغوی این لغوی نیجور که لغوی در جواهر هم هز. در مکاسب هست، که های دیگه هست. اینا هست من می بگم که این روش رو باید عوض بکنست. این راه راه درستی نیست. این راه درست جواب نمیده. تقصد بکنیم. این راه راه صحیح برای شناخت خود الفاظ قرآن و سنت و حدیث نیست. اخیری راه ایدولوژی این باعث در مرحله تقسیم و تفهم ما هم الان ممکن از در دنیا عرب اینطور باشه الان عرب ها این واژه فارسی لغزه برمش اورختر به انسان میگن اغنيه توش خوندن هست، آلات موسیقی هست، یه مجموعه ایه اما یه کسی مثلا صدا شد برم بکنیم برقی اخوییه نه هر باره نگیم در زمان ما اینه که مثبه آرونیسه از سلط یا مدد و سلط اینو الان بهش نمیگم اگر هم بگم این نحوه تساموهی میگم پس این خوب درقت بکنیم اینی که ما بیام فرهن کتاب لغت رو بیاریم و نقل بکنیم این یک نوع تعبض صرفه در جایی به درد نخوری که دونیم یک معنای واحدی بوده مثلا فلسط یک گیاه معینی بوده با یه خصوص معین این آقایی یک چیزی گفته اون آقایی خب این ممکنه اما لحظه غنام که خودش ارز تسامح داره ما الان متون تاریخی یا فراغانی مقابل ما هست تو سعی بخاری از تو روایط ما هست تو متون تاریخی است، کلنه یوغنی به کار برده شده معانی مختلف داره بله من اعز کردم اونی که قدر موسیقی هستنه خوب دقیق بکنیم در زمان نوزود قرآن و در زمان پیغمبر ارکان چه در مکم مدینه معلوم نبوده قناب اونی که اصطلاحا زمان ما موسیقیت و آلاته و سمفونی به اصطلاح یه تشکیل خاص سمفونی مثلا دستگاه میگن این اصطلاح نشده مثلا پس وقتی آلات رو بگن تار و تنبر و تنبور و مزما رو اینا رو می‌گن به یک نحوه خاصی بزنن، مثل کلام در قرن خاص، در این اطلاق نشده. در این کلی اطلاق شده بعدها بعد از این که از ترجمه یونانی آمده از فرهنگ یونانی این همون قنای بوده برای علم ریاضی، موسیقی بوده، برای علم ریاضی بوده. اون چه که در میان دنیای عرب بوده، خوب دفت بکنید، یک قنایه صوتی بوده، این مسلده مثل زمین بوده مرد اینجا میخانده فقط میخانده یا دستم هم این مسلمه دو همراه خاندن بربت و زر خود بوده این دوتا مسلمه این دوتا با شواهد تاریخی این دوتا که با بربت همراه باشه اما سقط آلا خود بزنه مثل قربی این هیچ شواهد تاریخی دلارت نمی کند شاید حتی ما در زمان امام صادق هم نبینی بله از سکردم در روزه اول احتمال میدیم یه قسمی از اینها به خاطر نزدیکی باقر به شام و بنی امیه آمده شده باشه اما این تو دنیای روایات ما تجلی پیدا نکرده. اون اصطلاح موسیقی امروز تو روایات ما نیست این اشتباه نکنیم اونی که در روایات بوده یا قناه صوتی صرفه یا قناع صوتیز که با وسائل همراه بوده البته در خیلی از حتی در زمان جاهلیت حتی قبل از اسلام همراه رقص هم بوده یعنی همراه اعمال بدنی هم بوده یعنی مثلا کنی جاری جواری اضافه برای این که میخوندن مثلا رقاصی هم میکردن اما به استثای رقص رفت، چون رقصش عنوان مستقلیه اون باشه کنار خود این و اصطباه اون که ما الان میفهمیم اینه و اینه که شیخ میگه خود ضربا اوتار هم این قناس این در اون زمان نبوده بعد بعدها سوش قناس شد گذشه باشن مراد من روشن شد ما دیکی اینجا به لغت برد نمیگردیم شواهد تاریخی ما کاملا کافیه پس این مثلی که شیخ و سال جواهر و دیگران بعدها مثل آقای کویی و بله اینا برداشتن آمدن محنای لغوی رو معنای لغوی تا جایی در کارگزاره کار که توش تفحیم متفهم باشه اگر تفحیم متفهم نباشه اعتبار نداره ارزش نداره با برده تفحیم متفهم چون میلیار لغت تفحیم متفهم تفحیم یعنی من این معنا رو گفتم شما هم این معنا رو فهمیدید من بدونم ها. من گفتم آب بیار اصلا این مایه بود شما هم همین رو فهمیدیم شما هم که یک مدتری گفتیم تفحیم کردید منم فهمیدم و من فهمیدم که شما قصد این منم دقیق کردید این تفحیم و اساس اصاس باب دقیقه توضیحات بیشتر میخواد که بعدها وقتیشون یک بحثی و ایشون آوردن که دیروز خوندید یک کمی وقت بودش من آزو میخوام برگردیم به تتمه بحثی ایشان ایشان بعد وارد یک بحثی شدن صبح این المراد به مترفت ولی بحثی شده که طرف مقابلشون مرحوم صاحب مفتاح کرامت یه مقدار عباراتی شیخ در اینجا به حسب الفاظ مصطکرام انسجام درستی نداره و خود شیخ هم نازل عباراتی نرم کرده این چیزا که که مصطکرام گفته عبارات شیخ واضح نیست مثلا مرحوم شیدی در شرحش توضیح داده چون میخوام واژه مکاسب بشن یعنی توضیح متن اوین خودشون مراجعه رو کن من نکته فنیش رو عرض بکنم مردوم شعر میگه مطرب که ترجیع المطرب آورده مراد لحظی که در انسان حالت طرف ایجاد بکنه اون به بکنه لحظی یعنی صفت این لفظ این است که در مستمع ایجاد حالا احتمالم داده شده مطرب در خود خواننده ایجاد مثلا شخصی که میخانه خودش با تراب بکنه، <تصفيق> مثلا با رقصید این بحثی کرده صاحب مفتاح کرامه ایشون این قضیه را اولا اجازه من دعوا اصحاب المثال کرامه الا زعم ان الاعتراض في تعريف بنا غیر ایشون اینطور گفته گفته که در کتاب سها سه آمده از التقریب الصوت مدهو ایشون میگه اعتراض صفت صوته نه اقراب صفت مستمع یا حتی فرض کنید متکلم، آوازخوان، مغنی. پس یک مغنی که با حال ترف میخونه، دو اون سامه که حال به فرر برش پیدا بشه، سه خود صدا، خود صدا. مصطلح شراب میگه مطرب یعنی خود صدا. نه حالت در شرانده به فکر بکنید مطرب رو این. چون میگه درسته ها وصف تفصیل به صوف مدهو ترد رو یک صفتی در خود صوتی به در مصباح المنیر داره که ترده به صوته مدهو و او. و فلقاموس که القاموس ار جنا که کسار منبوده منصود ببینید ماتفره به بده. قال رحمه الله در مثال کرام حسن حسن منداره که ان انال به و و اطراف قیر و ترد که این یک بحثی هست یه هم داره بحث معروف هست مثل متکلم خب مثلا اینکه خداوند که متکلم یعنی مثلا ما مثلا زبان داره صحبت می کنیم میگه نه متکلم صفتی نیست برای خود شخص صفتی برای امواج فضا متکلم یعنی مادیوج تو فضا از کلام متکلم نمی تکلم صفتی برای شخص نیست اونی که موضوعشه اون امواج هواییست امواج فضا این به اصطلاح تموج خاصی پیدا میکنه یه اسمش که کلام ولی اضافت متکلم مثلا بگیم خداوند متعال با موسی گوه نیان رب که فضلان علی مراد ایجاد صوته نه ای که با زبان تکلم معلسان ولی اضافت متکلم حقیقت متکلم اونه این جامعشون مخواد بگه که اطراف صفتی نیست که به دیگران برسه ما خود صوته و غیرترم به معنی الخطفه لشدت حزن او سرور کما توهمهو صاحب و مجموع البحرین و غیرهو من اصحاب نام حالا گفتم تو مجموع البحرین این نیه اشتباه که اصحاب مختار کردن بحثم کردیم توهمهو به چی برمیگرده دارن توهمهو به یک مرجع زمیر قیالی باسم کما توهمهو اتحاد که معناش شدیه فکا انهو قابل قاموس الغنا من از این تا کرنه ها اینجا آمده نظرم چون افتار این نباشه ها خیلی بیمنزه است اینجا بیمن هست متاسطفانه شیختی در بعدی مطالب رو نرکنه که با مصدر نمیخوره این هم یکی از مشکلات کتاب ماست که واقعا با نوش کار بشه تو جواهر از این مشکل هست تو مکاسب شیخ هم هست تو کتاب های دیگر هست که با مصدر نمیخوره که مورد باشه، فنی مرتفع اون رابطه اصلش اونه، اون رابطه بر اساس اون ایجاد میشه. اونم میگن رابطه ایجاد نمیشه. حالا یه دورو بحث در بحث بر میش. فکنه و قالف القاموس علی جنا من اسف ما مد و حسنه و راجیه. فنت بر علام نشود ترجیع و توار بضروب حرکات صوت و نفس. فکان لازمان لتراب ایشون میگه ترجیح اسم از صوته، طلبم ماده صوته. این اشکال کلام سامه مفضال کلامه و فیه شیخ اشکال میکنه شیخ میگه نه اینطور نیست که شما میگین اطراف صفت صوت نیست اون حالا نیست که برای شنونده سامع پیدا میشه او یعنی جعل از سامه متطقلن فی حرب ترب اداکان معنا ایشون به این معنا اگر ترب به معنای خفت و سرور باشه و حضن باشه لاجرم یکون مراد به اقراب و تطریب ایجاد و حاضر حاله نه یه ای ایجاد اکتفا در صدا ایجاد حالا در سامه و الله لازم من اشتراک و لحظی، و الله اشتراک لحظی لازم نیاد من انا هم لنگیر کنوده من آخر لیشترق من ها لفظ و تطریب و اقراب حالا که این بحثی بحث لغوی و مرگوم شیخ چون ترد یک سفر است برای ما اطراب هم یعنی آوازخان مقدی یک جوری انجاز بخوانه که من طرف پیدا بکنم او یعنی اون شخص من رو به ترابهو و اگر ترد دو معنا باشه یکی یک یکی, یکی در صدا باشه یکی یک حال در من باشه اشتراک لذیل لازم میاد یک مثال این نیست اطراب دو معنا باشه علم لغوی برمی‌داره اصولاً این در لغت ثابته در لغت عرب این جزو مسلمات بعضی جاها که به حساب معنای اون به حساب ماده معینه در صور اشتقاقیش عوض میشه مت دقت بکنید این داره جایی و لذا ممکنه اصلا معناش هم عوض بکنه مثلا کبهو در لغت عرب متعدیه کبه و علاوه یعنی روش هرش انداخ به صورتش انداخ به به صورت اما این کبه که با به افعال یعنی افسا یعنی که انداخ یعنی در کبه در نظر بیایید شخص رو هل داد انداخ کبه خودش افتاد با به افعال لذا اینجا خوب دقت بکن با به افعالش لازمه یک حدیثی از من سامعانی و یا ثنا بیت فلامیان سلما اکبر به الله من خریف نه یه چیزه میگه اکبر الله این از غلبهای مشهوری است ات از خطبای عرب اکبر الله این غلبه فهیج اکبر الله اینجا فعل سلام مجردش موجودهش لات متعبدیه فعلا بابه افغانش لازم شکل شده اینا هر سال ما سفر در لغت عرب به معنی پرده کنار جدنه ما سفر در لغت عرب به معنی مسافرت نداره گفته که رو داره برزیز خود در اما سفر به معنی دیگری رفته باب افعال منفعاله بردنگی گرفته بله. ما در بحث لازره این توضیحات رو عرض کردیم ببینید لا ید رکم منذر این غره اگر متعد... متعدی هم از لا ید رکم این یه معنا داره مزار اون هم متعبیه ولا تزار واددتون به ولده ها به زیمن غیر مزار علمت رجلون مزار ولا زرار ولا زرار این با مفاعله است. این با مفاعله چیز دیگه بناده میکنه این نیست که مرمون شهر مشتی یعنی تو که لحظی انصافاً حالا میشن زندوقبی دقیق نیست این گاهی میشه که با تغییر عبواب عوض میشه این مشکل نداره این که یعنی این مطلبی رو که مردم صادق مختار کرامی بیان به خاطر فرمودید به لحاظ مشکل نداره که طرف صفاتش داشته اما اگه در صوت آوردی گفتیم حق واقعانی یعنی خود صدا حالت خاصی داره خود صدا به خاطر این هیچ مشکل نداره این اشتراک لفظی هم نمیاره البته اصل قاعدهش اینطوره یعنی قاعده کلی این طور است که اگر ما مثلا حیاثور حساب بکنیم حیات یه محدودیت داره مثلا در کتبی از مطلب درست نیست در کتبی که ما آمده که لحظه تاهر لازم تاهر چیزی که طاهر اما تهور گفتن به حساب صيغه مبالغه طهور مبالغه و قائلش اینه صيغه مبالغه همون معنایی که در خودش هست اون رو زیادش میکنه معنیش این دیگه وقتی بگیم این تاهر برنی پات تحوره خیلی خیلی پات اما گفتن اینجا به خلاق باید هست تحوره یفته رو بگیره این, این اشمالاک معنا درست میکنه. از این معنا من نمی خواهد باشم اده ای کردم که از شواهد و لغت گاهی اینجوریه سیره مبالهه نمیاد فقط همون معنا رو میاد یک معنی شدیدی روز میکنه. کنه مثل طاهر که اول اقسام طهارت نگاه بکنیم بده که البته ممکن تموم اسم سیره مواله نه اسم حالت باشه مثل سهو مواله سهو و وضو مواله سهو داره من خواهم وارد اون بحثا بشم جاش زیاد از اصل هم خدمتتون این گاهی میشه یعنی این حد دروغه این دروغه هست که اگر سیله عوض شد ولی هیئت عوض شود قاعده تغییر هیئت ایجاد عوض نمیکنه وقتی اینطوره تغییر هیئت ماده را عوض نمیکنه اما این دروغت عرب هست مشکل نداره مشکل نداره طرف یعنی خصت و سرونی یک طبقی که برای انسان قد درخت بده مثلا بر ما پیدا بشه لکن اصله فی صوته مصربون یعنی صوتو فيه طرفون این اشکال نداره اشكال لفظی لازم نمیاد این که شی فرمولر اشکال لفظی نمیاد مضافن ایوه انمازه کردی معنی تطریب البته این اشکال دوبون شیخ وارده ایشون بها دیگه آید مفتحال کرده درسته در سه ها گفته تطریب فسود مدهو لیکن مرابشون اینه تطریب فسود مدهو و تحقینهو به حیث و یوجه به فسامه <تصفيق> گفتن مدهو نه این این صفت پرنمال صوته این اشکال دوم شده. و درست هم. این اشکال دوم شکل درسته مقتحال کرام اعباس سهال بگتر میده این اعباس اشکال دوم شکل درسته اگر گفتیم ترود و پی صوته ای مده بود ای حسنه بود ای رجعه این نه معناش این است که نظرشون بینیم باشه که فقط مد صوت و تحسین صوت رو نگاه کردن چون مد صوت و تحسین صوت یوجه و ترمد سامه چون یوجه و ترمد سامه میگه و الا اگر فرص یک تنها باشه هیچ سامه این آرست باشه مرمی نیست استعمال بکنن تحسین و ترجیح رو جایی مصرف میدونن که مسامه ای باشه اشکال کار مرمون دوم اینه الا آخری این که بله بعد بدن اختلاف چون فشنجه معلومه شارع مقاصد میشه ایوب برگردن در اینجا در اینجا بال دو مثلی ایشون هم علل اجاده صفه ها هيثوتس در بنا به سما. ایشون تفسیر نکرده سما رو این تعجب از ماجرا این مثلا درست نیست. ایشون خلاصه میکنن نظریه نهایی که ایبان سلم و حس سلم علیه العزه المتقدمه. اون متخصاییشه. من عرض کردم ممکنه عقوال لغوی ها متعجب باشه. من شواهد استعمال تاریخیش متعدد باشه اینو تمام قبوله اما اینکه ما در نتیجه نهایی بخوایم از روایات در عدل درگیری لازم نیست حتما به قول و قضا مراجعه کنیم مخصوصا خود دقت بکنید مخصوصا که در اذه از روایات ما اگر لم به قنا در نیامده در اذه از روایات ما آیات کتابی رو به قنا تفسیر کرد خیلی نکته من من ما منن نو من یک شری لهر حدیث لے üzere بیان خلیل ممکن ممکنه از این راه بارد و وشتن مو قول از زور وقتی وشتن بو قول از زور, زور تفسیر شده به قنا یعنی ما وقتی مخه مجموعه آیات و روایات رو نگاه بکنید ممکنه است دقت بدون احتیاج به قول و لغوی یک نتیجه گیری نهایی بکنید بگیم قبل متعکات مد و صفت تنها تحسین و ثنز زمان حرام نیست اون لفظ حدیثی که میگه لعن خلیل الله اونجوری که قول حضور ادات میکنه خودی نقصه رو داکت میکنه ما ممکن است یک لحظ رو در چنین مساله اخصاصی نداره یک لحظ رو در حتی ممکن است در لغوی از در تاریخی یا از در اجتماعی بگی معانی متعددی داره اما این ضرری به استنادی فقهی نداره ها استنبال فقهی متوفقی نیست به قول الله ممکن است بگیم ما با موارد استعمال متعدد دیم خصوصا در جایی که بیاد آیه تصدیق بشه این خیلی مهمه <تصفيق> و نزین لایک شد و اگر این به ماهی درست باشه از از ما اگر چون مقروم مقدس اردویلی که اینجا مقروم هم میاده مقدس اردویلی که من نهیده من این قوات صحیحه صحیحه در بابه شده من رو مقد پس به ما برگیم ما فقط با به بحث لغمی نیستیم ما بر میگردیم به بر میگردیم مخصوصا در اینجا که مسئله قرآن هم مفرقه اما ما با جمع بندی باید درستیم یک نتیجه پردیم ایشون میگه محسل حرمت صوت مرجع افیح علا صدیل لح آنوان مرجع قبول داریم آنوان ها نیشون اون صوت لحبی که و بعد می هم میگه مناسبت که همه یکون به عادت من غیر صوت به ورد اوتا این درسته این بوده اما این در زمان نزول روایت نیست شواهد ما اصلا کافی نیست که میشون بده اینها ها مجزید نوشون بقید بزنن کسی نخونه یا نرخصه اون که در میان عرب بوده حتما خاندن بوده یا خاندن تنها یا با قالات موسیقی عبارد اما اینکه فقط در با عثاب باشه در واقع به این که, که غریبا میذارن این در اون زمان نبوده در زبانش شو. حتی شواله ما حاتی زمان امام صادق هم نبوده ممکن اون زمان توی شام گاهی پیدا شده به خاطر نزدیکی با یونان بعضی یونانیا گرفته باشد این هست، اما در روایات ما نیست و به صوت فعل این درسته کلمه ما را مثلا فقط یخود به صوت مجرد این سه درسته اما یکیش نبوده در اون زمان قنا نبوده اون بالعالت صرفه در روایات من مانه قناب و نیامده چرا نه اشکال نداره؟ ممکنه زمان زمان نبوده الان با موسیقی بیزنه همون مناسب با مجرس لحب و لعب و اهل فسو, فسو و هم حرام اون فلیضا فا کل و صوت و نیاکون لح، کل و صوت و نیاکون و لحبا به و معدودا من الهام اهل فسو و معاصیب ها و حرامی خلاصه خلاته نظر شهی. حرف ما اینه که این خلاصه نظر ما, ما متوقف نیست به کلمات لغمی اینو ممکن از مجموع شواهد در بیاریم و مطلب شیخ درست قسم اولش فقط در نبایت نیامده اما ممکنه صحب مغیره رو پیدا بکنه اصلا الله عنه محمد